به نام خدا، دکتر هدا هستم، دکترای تخصصی سلامت باروری و آزهیت علمی دانشکالون بزشکی شهید بهشتی. با مجموع پادکست های آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک در خدمت شما بزرگ هستم. بارداری و زایمان دو پدیده زیبا و شگفت انگیز خلقت هستند. به همین دلیل هموار علوم مختلف اهم از پزشکی روانشناسی و جامعه شناسی به بررسی و بازبینی موشکافان این دوران میپردازند هدف همه فعالیت های علمی ارتقاء سلامت مادر و جنین و به دنبال اون ارتقاء سلامت کل جامعه هست متاسفانه در دهه‌های اخیر مداخلات فراوانی در هیته بارداری و به خصوص زایمان انجام می که مشکلات جهانی را مانند افزایش آمار سزارین، جدایی زود هنگام مادر و نوزاد در بعد تولد و نبود حمایت کافی روحی و روانی از مادر را به دنبال دارند. این مشکلات باعث شدن تا مقوله بارداری و زایمان از نظر فیزیولوژیک مورد بررسی قرار بگیرد. در این نگرش بارداری و یک پدیده کاملا فیزیولوژیک هست که بیشتر از اون که نیازمند مدیریت و مداخله باشه نیازمند حمایت و همراهی مادر باردار هستش به عبارت دیگر نظریه جدید زمن اون که به دنبال به کارگیری روش است که کمترین صدمات جسمی و روحی را رو برای مادر و جنین به دنبال داشته باشه معتقد هست که همه افراد دستان در کار ارائه مراقبتهای های بارداری و زایمان باید در تمامی موارد طبیعی و غیر طبیعی کاملا متخصص و کارآمد باشد. این نگرش تکید بر این داره که مادر باردار فردی کاملا سالم هست که در یکی از ارزشمندترین و حساسترین مراحل زندگی خودش یعنی بارداری و زایمان به بیمارستان یا مراکز درمانی مراجعه میکنه و انتظار میره که این فرد سالم با سلامتی کامل هم از این مراکز ترخیص بشه و تیم پزشکی ارایدهنده خدمات به مادر باردار هم طبق اولین قانون اخلاق پزشکی موظف هستند که خدماتی رو به مادر ارائه کنن که ضرر و زیان جانی برای مادر و به دنبال اون برای جنینش به همراه نداشته باشن به کار گرفتن روش‌های فیزیولوژیک و روش های مبتنی بر شواهد علمی راهکارهای بسیار مناسبی برای اداره بارداری و زایمان کم خطر هستند بر طبق نظریه سازمان جهانی بهداشت تنها 10 تا 15 درصد موارد بارداری و زایمان با خطر بالا شناخته میشند که نیازمند مداخلات مناسب و ضروری هستند با افتراق موارد کم خطر و پر خطر، ارائه مراقبت مناسب در زمان مناسب و به روش مناسب، هنر پزشک و مامای فرهیخته هست که میتونه کمترین آسیب رو به مادر و جنین اون به همراه داشته باشه. مجموع پادکست های حاضر بر مبنای نیازهای زنان کشورمون که حق اونها داشتن بارداری ایمن هست تلاش میکنه تا با ارائه نظریات و راهکارهای علمی و عملی در زمینه آمادگی برای بارداری و زایمان و ارائه روشهای کاهش درد غیرداریی که چالش اصلی زایمان طبیعی هستند، فضای انجام مراقبت لازم را برای یک بارداری و زایمان فیزیولوژیک برای مادران عزیز جامعه‌مون فراهم بکن اگرچه این مجموعه قطره بسیار کوچکی از دریای بیکران دانش بشری در حیطه زایش و تولد انسان هست.